<تصفح> <تصفح> الحمد لله الواهد الأحد الفرد الثمد لم سم يلد ولم يولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره و تكبيرا و و سلام علی خیر خلقهی و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب اله غاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آلیه و سلم سیما ناموس دهر و امام العصر خجت ابن الحسن العسکری المهدی عزاقی مقدم و خدا و لا اناتولا حلا اعدائه مجمعین من الان لا قیام يوم الدین خب شب بیستم ماه مبارک رمضان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 خب ارائزه ما در این شب های ماه مبارک رمضان یه شرح کوتاهیه بر موعظ و فرمایشات امیرالمومنین علیه السلام خطاب به امام حسن مجتبی علیه السلام در نهضت البلاغه نامه سیوی و, و امشب در ادامه مواعظ و فرمایشات امیرالمومنین به این جملات میرسیم که حالا این یه چهار پنج خط که من اول حالا میخونم ترجمه میکنم و مضمون این چهار پنج خط اینه که در برابر بدی تو خوبی کن نسبت به برادران دینید چون خدا نظرش این بوده که بین مؤمنین نزدیکترین رابطه سمیمانه باشه که اون اخوته نظر روابط سمیمانه و محبت آمیز نزدیکترین رابطه برادریه. حالا پدر و فرزند چون یکیشون خب ولایت داره یکیشون باید فرمان ببره رابطه مساوینی. پدر فرمان میده پسر بعد اطاعت بکنه اون رابطه مس... اما برادری رابطه مساویه این دو تا برادر هر حقی که این به گردن او داره اونم به گردن این داره دیگه برتری بینشون نیست نهایت اگه باشه میگن این سنش بیشتره برادر بزرگتره به خاطر این خدا میفرماید که اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ مؤمنون نه می, می که مؤمنین حکم چی رو دارند؟ برادری رو دارند یعنی سمیمانه ترین رابطه باید بین مؤمنین باشه حتی میخوام بگم که رابطه ایمانی گاهی از رابطه اخووت هم قوی تره مثلا دیگه تو جنگ ها پیش می اومد دیگه مثلا یه برادر تو سپاه پیغمبر اکرم بود مثلا یه برادر تو سپاه ابو بود اینا هم دیگه رو می کشتن. تو کر که یه برادر تو سپای امام و بود یه برادر تو سپای عمر سعد بود هر هم کشته شده یعنی اینی که تو سپای امام و بود شهید شد اونی هم که تو سپای عمر سعد بود کشته شد امیرالمومنین المومنین ما تو جنگ ها صدر اسلام برادرامونو میکشتیم بابا هامونو دو امام زمان الان بیاد شما تو سپاه امام زمانی برادر تو سپاه رو به روی نه هم دیگر رو می کشن. اما مومن نه مومن, مومن هر دو تو سپاه اجتت نلسنم رابطه ایمانی از اخووت بالاتره این توجه بفرمید به خاطر این خدا میفرماید ان اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَرْ از اخلاق اسلامی اگر همین یک کلمه حرف جا بیفته تمام اخلاق اسلامی جا میفته خدا شده همین که شما بفهمید که این بغل دستید که داره برای ماموس این بلند بلند گریه میکنه این حکم برادر تو رو دارد این شب که دارین قرآن سر میگیرین شما قرآن بالا سرته عشق میریزی بقلیت هم قرآن بالا سرش در عشق برادر توه چون هیچ برادری نمیاد پشت سر برادر خودش غیبت کنه هیچ وقت نمی حالا من اگه بالام منبر پشت سر برادرم قیبت کنم از منبر ده نفر میان جلو من میگن آجا بدبار نخوره کار خوبی نکردی آدم رو برادرشو نمیبره توف سر بالا سو صورت خودت میفته من نمیام الان اینجا آبروی برادرمو ببرم ولو اصلا دو تا برادر ولو بین هم بینشون شکراب بشه در مقابل دشمن با هم متحد میشن بینشون شکراب ها. اما تا می‌بینن یکی ارا داره باو دشمنی می‌کنه دو تایی با هم متحد میشن میگن میگن ما شکراب بینمون هست ولی در مقابل دشمن یده واحدی هیچ برادری نمیاد برادرشو مسخره کنه دیگران بخندن مثلا من بیام الان برادرمو تحقیر بکنم تو این جنب مسخره کنم شما بخندین اگر هم این کارو بکنم همه منو چی مزمت میکنن میگن آقا واقعا آقا, آقا، کار خوبی نمیکنی آدم برادرشو ضایع نمیکنه که غریبه ها بخندن یا دو تا برادر اگه با هم دعواشون بشه اختلافی پیدا کنند برادرای دیگه میان چیکار میکنن آشتیشون میدن میگن که خوب نیست ما برادریم ما بذاریم کنار قریبه ها سو استفاده میکنن توجه میکنیم اینا همه اخلاقی کنی اخلاق اخلاق اخلاق همینه اخلاق اسلامی که مومنه و غیبت یه مومنه دیگر رو بکنه اگه بفهمید فهمید برادرته نمیکنی من آقا تا این سن رسیدم پشتره هیچ کدوم از برادران من قیبت نکرد چون گفتن برادر نمیاد آبورو رو ببره من تا این سن رسیدم آقا یه دونه از برادرامو مسخره نکردم که دیگرام بخندم قریبه ها بخندم اونا رو تحقیل کنم دو تا برادرمون اگه این موقع شکراب بینشون بشه ما همه دست به دست میدیم اینا رو حتی افطاری میدیم نمیدونم ولیمه میدیم اینا رو بیاریم با هم آشتی بدیم میگیم که خوب نیست بذاریم کنار این هیچ برادری نمیاد اسرار برادر دیگرش رو فاش کنه آبورش رو میگم میگه این اصرار خانوادگیشه. هم. همونطوری که اصرار خودش رو حفظ میکنه اصرار برادرش حفظ میکنه اخلاق اسلامی همینه همین یک کلمه که چی آقا اینم المومنون اخوه اما چون ما با مومنین این حالاتو رو نداریم خدایی نکرده غیبتشون رو میکنیم خدای نکرده اثارشون رو باید نکرده مسخرشون میکنیم هیچ برادری نمیاد جیب برادرش رو خالی کنه اصلا تمام اخلاق اسلامی هم یکدم حرفه انم المؤمنون اخبر خدا راجب به ما الان از فرهنگ دینی دوریم دیگه ما خیلی از فرهنگ اسلامی دوریم توجه بفرمین واقعا گریه آوره الان تو کل اروپا یه پوله یورو یه مرزه تو اونجا ویزا نیست نمیدونم مرز مشترک رفیق من میگفت سوار مترو میشدم تو آلمان پایتخت آلمان میرفتم تو پایتخت هلند پیاده میشدم انگار که از یه ایسکایی مترو از یه ایسکاییی ایش که شما از یک کشور و دیگه یک دیگه حالا که اسلام میگه مؤمنین با هم براند اما دارم میخواست شما اینجا برانشه بری اراق ببین تو مرد چه کارت می کن کشور شیعه که همه من هم آشقه امام حسینی حالا دیگه چجوری همدیگه رو میکشیم که دیگه بماند مثلا دایشی ها میگن هرکی یه دونه شیعه رو بکشه به هشت بهش باجب میشه شیکیه <تصفيق> آور میذا و دینی که میگه مؤمنین همه باید با هم برادر باشند. متاسفانه این،, این کاریه که انگلیسا کردند دو سال سیصد سال کار کردن الان به بار نشد. همه هیچ ایرانی این اقا عرب خوشش بیاد. عرب با کره مثلا بازی داشته باشن همه ایرانی ها میگن خدا کنه کره شیش داشته بزن میگه او اینا مسلمانن؟ هن اونا, اونا مسلمون میگه نه پوز این عرب ها بخوره کن اونا هم همین هم من تو عراق که بودم عراق کشور شیعه هست اصلا همه هم, هم عربه که چه پذیرایی میکنم من تو عراق بودم ایران با عربستان بازی داشت ایران به عربستان با به قدر این عراقی ها خوشحالی کردم اونا اینا که همه داعشن هم که اینا که تو کربلا بم میذارن تو سامر را بم میذارن شما ترجیح می دی. اونا ببرن ما که به پهنای صورتمون برای امام گریه میکنیم کنیم ببازیم خب او اونا عربن شما عجمی ما یه موی اونا رو نمیدیم به هزار تا مثل شما اینا رو انگلیس کرده ببین مؤمنین رو صدکی چه کرده بعد دیگه ما دشمن نمیخوایم خودمون شکم یا رو پاره میذاریم ما دشمن نمیخوایم و اونا چی میگیم؟ میگیم به ما اصله بده پدر اونا هم کمپانی هاشون اصلهه میفروشن هم به ما میدن هم به عراق میدن هم به عربستان میدن حالا به عربستان مستقیم میدن به ما میگن دلالا بیان واسطه شن چند برابر بشون یعنی آقا خودمون خودمون حریفیم اصلا ما اسرائیل لازم بیاد تو صحنه خودمون همدیگر رو میکشیم لط پار میکنیم بعدم صبح تا شب عبدالباسد الواسد با صدای خوش میخونه انم المؤمنون اخوان اینو ترجمه میکنه مؤمنون با هم دیگه برادرن با که همدیگه رو میپوشن تیک تیک میکنن توجه بگم برای اینکه این یه دونه آیه جانانه گفته جوونا آیون خانوما قرآن میفرماید محمد رسول الله زینم معه هر کی این پیغمبر رو قبول دارد هر کی به این پیغمبر ایمان آورده هر کی این پیغمبر رو از طرف خدا میدونه اشدوا و علل کفار روهما و بینهم من چی میگم این قرآن دیگه ما از جای دیگه نمیخونیم هم نمیخونیم میگن اینو از امیر گفته کی گفته نه نه ما قرآن می خودیم. همین کتاب آسمانی که همه فرق اسلامی میگن ما قبول داریم میگه هر چی زیر پرچم این پیغمبره مارم از اون روزه الان همه جهان اسلام آقا مارم از اون روزه خب اینا از اسرائیلیان اینی که مارم از اون روزه میگیره که از اسرائیلی بهتره که الان همه جهان اسلام دارن تو این ما ختم قرآن میکنن این هایی که آقا قرآن رو ختم میکنن که از اونهایی که قرآن رو آتیش میدنن که بترن که همه اونهایی که به این پیغمبر ایمان آوردن اشده و کفار اینا در مقابل کفار سرکشن ابوسند. مثل افتا عباس. عباس عباس آقا سیغه مؤمن. مومن باید خوشرو باشه مومن باید بشاش باشه اما عباس ثقه مبالغه است در عبوسیت ابوس علاوه به شیری که ابوس میکنه و با نگاه شکار میکنه نیمد شیرا نگاه که میکنه این خرگوش مثل بیت میلرزه تسلیم میشه فرار دیگه نمیکنه با نگاهش شکارش میکنه به اون میگن عباس امیر اسم اسمه اینه باشه عباس این عبوس در مقابل کی بود؟ در مقابل زینب سلام الله علیه عبوس بود در مقابل سکینه عبوس بود در مقابل رقیه عبوس بود نه این در مقابل دشمنان دین عبوسه اون که روبروی امام حسین بایست عبوس عبوس یعنی عشده و علال کفار. ما الان بد هرچی نیرو داریم روبرو رو اسرائیل بسیچ کنیم اون تهاشی امنیته حالا دایشی ها ما رو می کشن. یه اسرائیلی رو نمی کشن. اینا نمیگن که اگه کسی یه دونه اسرائیلی رو بکشه بهش واجب می جه باقی اونو بکش ما که حالا نماز رو که می خونیم. اونو اون رو بکش نماز قبول نداره اشده و علال کفار اما روهم ها بو با خودی مهربان حالا مخصوصا آقا بیایید تو این خودی ها به طور شیعه ها الان شیعه ها شده هم هم نگره باره میکنند خوده می من نمیتونه هم باره شد میکنم هم شیعه با شیعه چه میکنند حالا اومدیم آقا خودی شیعه شده همین که تو زیارت آشورا میخونین انی سلمون لمن سالمکم و هربون لمن حاربکم یعنی هرچی امام حسینی باشه من نوکرش هم کسی بیاد برای امام حسین گریه کنه من جونمو براش میدم من این کسی امام حسینی باشه من باش میده خودیه دیگه و هر بل لمن حاربکم ولی لمن والاکم عدو لمن آداکم پیغمبر میفرمودن حالا من یه خود این بازش میکنم پیغمبر منم بعثت و ل اتم من مکارم الاخلاق من مبعوث شدم مکارم اخلاق رو تکمیل کنم به اتمام برسونم مکارم اخلاق غیر از حسن خلق ها نه حسن خلقو که اصلا این وقت میگن کافرام دارند اخلاق قشتی یکی کاسر اخلاق خوشی دارد مغازه دارد هر کی میاد تر و خوشی میگیم چقدر شما اخلاق میگه من کاسه هم دیگه کاسر اگه اخلاق من باشی که مشتری نمیتونه جرد کن. میگه من اگه ابوس باشم که مشتری همه میپرند که بعد این رو تر و خوششون کنم حسن خلق حسن خلق این است که شما با روی گشاده با مشتری برخورد کنیم با مردم برخورد کنید اصلا ممکنه کسی کافر باشه خوش اخلاق باشه چرا چون بگی که درآمدم زیاد میشه روزیم زیاد میشه اما مقارم اخلاق این نیست مکار اخلاق این نیست که شما با روی خوش با مردم بر به پیغمبر گفتن آقا مکار اخلاق چیه؟ گفت هرچی به شما بدی کرد شما بهش خوبی کنید این آقا این غیر اونه دیر جذب کنیم، جذب پیغمبر با اخلاقش جذب کرد، خدا تو قرآن میگه فبما ما رحمت من الله لنتله میگه یه رحمتی که شامل این امت شده، اینه که تو آدم نرمخوی هستی لنت لینه لنت تو آدم نرمی هستی بعد میگه تو اگه یه آدم خشنی بودی یه آدم توندخوی بودی همه از تو متفرق می شدن از آدم توندخو دورش چه نمیشن که لو کنته فضن قلیز القلب لن فض و الان قرآن که مردم رو جذب نکرده که اخلاق پیغمبر من مردم نمی تو قرآن چیه اون صدرسان من تو, تو قرآنم هست هر جا پیغمبر میومد اومد قرآن بخونه اینا انگوششون تو گوششون یجعلونه اصابه هم فی آزانه هم مه... گوش نمی دازن بهشون هم گفته بودن ابو جلیل هم هر جا این قرآن میخونه خونه گوشتون رو بگیرین. گوشتون سهرتون میکنه اونام اونت این ساهره شستشوی مغزیتون می ده مگو از این یه رفع گوش بدی حالی با مثل صدای عبدالباسد عشق جاری میشه ایمان میاری تا به خودت بیایی شهیدم شدید اصلا تا به کجا رفتی میبینی برد احض شهیدت کرد از این بترسیم این ساهره اینا تو میدیدن گوشونی میادن نمیدن تو قرآن چیه قرآن که مردم هدایت نمی کند الان تو ایران هم هم اینجوره حتی الان چند درصد ایرانیا میدونن تو قرآن چیه نمیدونم هر اینایی که قرآن دو بار سه بار خط میکنن اینا هم نمیدونن تو قرآن چیه الان یه کسی که آقا یه جز قرآن میخونه شما امتحان کن تو مسجد ها هستن برو بگو هاجا آقا سلام علیکم میگه سلام علیکم بگو یه جز تو خوندی میگه به حمد الله خدا توفیق داد خوند من تشکر خداون می میکنه میگه الحمدلله امروزم بگو تو این یه جز خدا چی گفت میگه من چه میدونم چی <تصفيق> میگه الان من سی و پنج سال قرآن میخونم نمیدونم خدا چی گفت مردم نمیدونن تو قران چیه این کتاب که نمی‌تونه اینا رو چون چیه. اینا چی رو می‌بینن؟ اینا مذهبا رو می‌بینن. واعظا رو می‌بینن. اخوندا رو می‌بینن. مسجدی‌ها رو می‌بینن، هیتی‌ها رو می‌بینن. اینا اینو این می‌بینن، که نمیدونن. اگر از این هیتی‌ها خوششون بیاد میگن این دین خوبیه. میگه نه واقعاً دین خوبیه. میگن هیاتیه رفته سه خیابون اونورتر ماشینشو پارک کرده مزاحم نباشه. میگه اینا کارشون درسته اگه این مسجدیا آدمای خوی باشه این دین خوبیه میگم این مسجدیا آزارشون دیگه مورچه نمیره میگه من تا حالا نشده با یه مسجدی معامله کنم سرم کلا گذاشته بشه اینا اصلا میگرده یه کاسبی پیدا کنه مسجدی باشه میگه کلا سر آدم نمیذارن جرون نمیدان اینا اینا میبینن دیگه منو میبینن من اما اگه از ماها خوششون نیاد که من میرم سر پل مردوم ماشینونو پارک میکنیم می خدا اونجا معطله دیگه میام میگه آقا من یه ساعتو نیم اینجا معتله هم. میگه معتله امام حسینی دیگه آقا مگه ناراحتی معطل من که نیست که بعد میگه اگه عروسی هم بود گیر. میگه بابا عروسی چیه بابا من عروسی و عزا برای من فهم نمیکنه که من اینجا میگه برو از مادرت نطفت رو به خدا مشکل ده ای بابا میگه ما نطفه مونم مشکل بده چهار ساعت اینجا محتلیم حالا از داره نطفه مشکل ده خب این زده میشه آقا بعد میگه خب من هر چیه دیدم بابا اینجوری برخورد. میگه اگه این دین تربیت میکرد اینا رو تربیت کرد اگه این امام حسین آقا مربی بود این چهار نفر رو تربیت کرد بعد اینی که از تربیت چهار نفر آجزه میخواد جهان رو تربیت کنه چون آقا توقع داری که مردم پیغمبر اخلاقش جذب میکردن نه قرانش رو که اصلا گوش نمیدادن اینا که آقا دستشون آیه قرآن خوندن دیگه درسشون اینا گوششون که صدای پیغمبر رو نشنن خب اینا چه جوری هدایت میشدن آقا اخلاقش دیوانشون میکرد روده گوسفند سرش میریختن خرمایی فلاپ یادم اصلا, اصلا دیونه میشدن به خدا بنیانکنی من یه آیه از قران بخونم به پیغمبر میگه اتف باللتی یا احسن چون مثلا کتابات بود از میگه یا رسول الله هر کی به تو بدی کرد با خوبی رو بگیر با خوبی جلوی بدی رو بگیر بدی رو با بدی جواب می... فوش رو با فوش جواب نده یکی کہ من فوش میده منم فوج میدم اون بالاترش میگه من با چاقو کشی میشه دیگه چون اینا خودش خودشون رو تشدید میده ببین یکی من آقا به ما فوش داد خب منم فوش میدم اون فوج بالاتر میده منم فوشو بدم اون چوب میاره منم آهم میارم خب خون و خون کشی میشه می دیگه کی میتونه بدی ها رو با بدی ها از بین ببره میگه اگه دلسوزی میخوای بدی ها از بین برند در مقابل بدی خوبی کن بله روده گوسفند سرت میریزن اصلا آقا مردی بوده چکه دو سه روز نیومد عجیب آقایون من میگم به خدا منوالیت میشم نیمونم این چه خلقی بوده که خدا میگه این نکل علا خلق عظیم تا این برادر ما کجاست دیگه حال ما رو نمیپرسه چون <تصفيق> گفت دلم براش تنگ شده سه روز نمیاد گفتم آقا افتاده تو خونه حالا به من اگه بگن افتاده تو خونه میگم چشمش خوب هر که با نمیدونم آل علی در افتاد و افتاد عوام فریبی که چون با یه نوکر امام حسین دیگه چی مردمم میگن یه چیز دیگه میگم میگن به حضرت حباز یه بار رودهی گوزفن سریش افتاد تو خونه خود, خود این بند خدا میافته تو خونه رودهی گوزفن ترکیه نافته و دو روز دیگم ما میافتیم تو خونه ما به کی دلم کردیم خود پیغمبرم مریض میشد دیگه خود پیغمبرم مریض میشد تو خونه میافته مگه اگه تو خونه بیافته چوب خورده فرموندم که خورما بخریم من برم یادتش اون ما رو یاد میکرد ما هم باید اون رو یاد کنیم حالا یکی میخواد قلقلک بده اینجوری هم از اینم به درد یکی میخواد طرف رو بده خورما میخره میاره بعد میگه که من آخه چه هیزون بابا باباییه بابا, بابا ول کن دیگه تو نمیخوای خوبی رو خوبی کنی تو میخوای یه رو رو آلشو بگیری اونم از نداره. ندارد اما پیغمبر جوری میومد که این رفته بود زیر پتوهای های گریه میکرد خیلی حالت اون نوع اومدن خیلی مهمه های اون پیغمبر این پتو رو زد کنار صورتش شده بوده با حالت چطوره چرا حال من دیگه نمیپرسی چرا پیش شما نمیام اون هی میگفت اشهدو الله اله حیلالله. خدا اینو میگه آقای میگه بدی رو با خوبی جلوشو رو بگیریم بعد میگه فعظ اللذی بینکه و بینهو عداوتون میگه اگه بین شما دشمنی هم باشه با این رفتار کهنهون ولیون همین اون دوست سمیمی شما میشه باید. یعنی خدا میگه ابتو دشمن منظور اسرائیل نیست یه بقیه کسی آقا مثل شما حیعتیه ولی شما با هم دشمنی خیلی وقتی آقا اونم برای ماموسه گریه میکنه شما اما با هم خوب نیستیم هیچ میاد آقایون اما شما آمدی اینجا برای مامازن گریه اون اما اون از شما خوشش نمیاد اینو میگه. میگه اونی که با شما میونش خوب نی اگر این رفتارا رو از شما رفیق سمیلیت میشه خدا میگه آقا با دشمنت در مقابل بدی خوبی کن تا برسه آقا با دوستت با رفیقت تا برسه با همسایت تا برسه با برادرت تا برسه با فرزندت تا برسه با پدرت من چی بگم به خاطر این به امیرالمومنین میگه اهمل نفسک من اخیک اندسر مهی عل السله اخیک میگه اگه یه برادر دینی داشتی اخوت بینتون بود اگه او با تو قهر کرد تو برو وصف کن در داره یه شکر آبی بینیتون شده اما خب امام حسینیه تو, تو دین و حجت ابن الحسنه اگه امام زمان بیاد این جانشو در راهو میده حالا یه شکر آبی بینیتون شده او قد کرد امیرال مومن به پسرش میگه بقیه هم شبیه اینه اگه اجازه بگید هر چند خطشو میخونن و اند سدودهی علال لطف اگرم او از تو من کرد مثلا چیزی ازش قرض خواستی نداد من کرد بخل ورزی اما تو بهش محبت کن نیکی کن و این در جمودهی علال اگه اگر او بخل ورزی تو بعضل کن او اگر از تو دوری کرد تو خودتو به او نزدیک کن اگر او با عصبانیت و شدت تو با نرمی باشد رفتار کن یعنی کلا میگه در مقابل بدی خوبی کن کلن و این در علی علال اوزر اگرم او به تو بدی کرد تو به او نیکی کن همشی که حالا جملات مختلف کلش همینه که بو است پیامبر میفرموندن لعتم ممت بعد از خود پیغمبر سهار کردن آه این مکارم اخلاق چیه و هرکی به شما بدی کرد شما خوبی کنه. هر هرکی به شما قعط رابطه کرد شما بزد کنه. هر هرکی از شما دریغ کرد شما باز کنی مردم رو جذب کنی من همیشه میگم آیا ما به بسیجی میگم به حیطی ها میگم به مسجدی ها میگم میگم ما باید توازو کنیم و مردم جذب کنیم ایراد از ماست؟ ما اگه اخلاق پیغمبر که حالا نمیشه داشت، اون الگو کرده بودیم الان همه ایران آقا امام حسین شده بود اگه الگوی ما پیغمبر هر بود تازه امام حسین با این همه جاذبه که الان مردم ایران ببخش آقا من اینجوری زد مردم اینا میگن ما امام حسین رو میخوایم هیتی ها رو نه <تصحنت> یعنی خیلی از مردم ایران امام حسینی هستن اما میگن اون کارش درست بود اینا نه خیلی میگنی پیاده اینا حاضرن عربعین تا کربلا برن اما حاضرست هم تو حیط هایی مبیان شرکت کنن تو حرم ها میرن مثلا تو حرم امام وقتی شما شب عیده میگنی مملوب از جمعیت ایرانی ها هنوز آقای اون اهل بیتو دوست دارد شما اگه موقع سال تحویل نگاه کنید شاید نصف ایرانی ها شاید بیش از نصف ایرانی سر سر صفره اهل بیدن یا مشهدن یا قوم یا شرطلزیم هن یا امانز ساله یا اگه مدینه باز باشه مدینه یا کرولان یا نجفن یا سامران اگر هم تو خونند آقا تلویزیون رو وا کردن دارن مشهد رو نگاه میکنن میگن سالمون رو با نام امام بیدن ما مردم اهل رو ر حالا ما با کیا رو برویم با مردم بیتی، آشقان امام حسین نمیتونیم اینا رو جذب کنیم نمیتونیم با خلقمون با اخلاقمون با گذشتمون اینا رو جذب کنیم نه جذب نمیکنیم کنیم کهی هم میکنیم, میکنیم. اما اونا باز میپهمن میگن نه ای به اینا به امام حسین نداره امام حسین مشتیه اینا مشتی نیست با تفکیت میکنن چقدر آقای اون اهل بیت به ما گفتن کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا یا شینا چقدر اون این جمله چقدر گفتن برا ما زینت باشین مثلا یه جوری باشه بگن این امام زمانیه امام زمان حال کنه که ایفانه بگن خوشحال بشه بگن من افتخار میکنم این امام زمانیه آیا واقعا از منی که گوینده هستم اینجوری هستم تو حالا و بقیه واقعا اگه به امام زمان بگن که این امام زمانیه او افتخار میکنه یا آقای بود عرضم رو تمام کنن منبری خوبی هم بود اصلا اسمش نبریم از دنیام رفته خیلی منبری خوبی بود منبراشم شلوغ بود من نوجبون که بودم بعضا پای منبرش میرفتم تو این محله هم زیاد منبر میرفتم یه روزی بالا منبر میگم من آماده شدم برم منبر خب لباسم و پوشیدم ای بود گفت ما در وزرگم خونه ما بود گفت کجا میری گفتم فلانجا قول دادم مجلس دارم میرم منبر گفتم خب حتما میگه التماس دو حالا ما هر وقت خونه مهمون داریم ولی من اینجوریه میگن کجا میگن من. همه میگن اعتماس دعا مارم هم دعا کن. رسم دیگه حالا میگن التماس دعا. گفتم دارم میرم فلان جا. گفت پسرم مادر بزرگم. ولی من همیشه دعا میکنم خدای ما موسی نه از شر شما ها حفظ کنه. اصلا خیلی به من برخورد ما میریم روزه میخونیم دیگه چه شر که روزه هم می‌خونیم شره گفت نه ناراحت نه پسرم تو اینجوری میری رو منبر جلوه میکنیم اگه بیایی بیرون مردم یک کار دیگر است و اینا زده میشند میگن اینی که روزه خونه اصلا زده میشند چالا شره به امام حسین نرسه و تو که خیلی نداری شره نرسون خدا آقا من من خودمو میگم بهتون بگم ما چه خیری نداریم شرمو نرسه حالا مثلا شما چهار 4 گریه کنی مثلا امام حسین بالا میره مثلا شما نیاز داری گدایی دیگه گدا اومده از در خونه امام حسین گدایی امام حسین بالا میبره ما بعد شرمو نرسه ببین اگه شما آقا اینجا بیای ناله بزنی خدایی نکرده یه رفتار ناشایستی تو خونه داشته باشی اونا زده میشن. آقای اون جایی میرسد پناه میبریم به خدا جایی میرسه میگن اگه برای دخترت هییتی اومد خواستگاری نده آقای میگه چرا باید اینجوری بچند حالا که امام میگه که یکی که میگه اگه کارمند هییتی اومد نگیر <تصفيق> میگه می من می میگه اگه گفت هییتی هم نگیر من گرفتم چوبشام خوردن به نکن خوب جمله ای گفته رو منبر گریه میکردم این بااعزار می گفت. گفت خوب منو نصیحت کرد گفت همش ایندی بری بالا منبر بخونی بیای پایین نه پایین زیر زده چون زیر غ بینی امور معمون نبر تو رو دیگه به عنوان روز خون معمون می اینو میگن مدا اینو میگن خطیب اینو میگن سین زن اینو میگن این لباس مشکی اصلا خودش مسئولیت آوره دیشب شب تلخی بود برای بچه های علی من یک کلم هم نگه ذکر مصیبت کنم حالا این هیات قبلی که روزه خوندم خسته بودن نکنم شب زیاد گریه کرده بودن اما خب هر چقدر جب گریه کرده باشی به اندازه زینب گریه نکرده <تصفيق> به اندازه بچه های علی گریه نکرد. تو نماز دیشت تو سهر امروز تو نماز چنان زربه رو زد به فرق امیرون امیر امیر. عبارت مقتل آقایم و وقتتون نمیگیرم تمام این کوفه میلرزید. یه دفعه خیال کردن قیامت. کردن اون زلزله‌های قیامت. اومده بودن آسمون رو نگاه می کردن ببینن که کرات نمی‌افته. هر چی در و پنجره بود تو کوفه باز و بسته می‌شد. طوفان دیدین طوفان میاد، هوا سیاه میشه. طوفان سیاهی شروع به بزیدن دیدن جبرئیل هم فریاد میزد تحدمت والله ارکان کاملوالغدا تقریبا همینا رو میگو و انتسمت والله اعلا و متقام قد قتل ابن عم المصطفى قد قتل علی و نلمرتزا حسنه نمیدونم با چه حالی اومدن همین وارد مسجد که شدن دیدن پدر مظلومشون داره تو مهراب قلت میزد. از شدت درد مهراب قرق خون این خاکهای مهراب رو بر می به فرق شریفش می مانند اینا اومدن سر پدر رو به دامن عجیب گریه می کردن. امام حسین امام حسن عجیب گریه می اشکشون عشقشون می ریخ رو صورت امیرو امیروی چشمش رو باز کردید حسن داره مثل بارون گریه می کردن حسن جان برای من اینجوری گریه نکن. گفت پبوت تو جای خوبی دارم میبرم هر قسم خود. گفت حسن جان به خدا قسم این بالا سرشون گفت این جد شما رسول خداست. با همه انبیا نشستن هی به من میگن علی کی به ما ملحق میشین زود فر بیا بین ما. من. گفت منو دارم بین انبیا میبرن. این امام حسین داره مثل بارون گریه میکنه گفت حسین جان اینجوری گریه قسم خود گفت به خدا قسم پایین پار گفت این مادرت فاطمه است با همه زنهای مجلله نشستن دارن میگن علی زودتر بیا به ما ملحق شد بعد گفتش که پسران من کینها رو بعد از من به شما ابراز میکنن حسن جان تو رو سم میدن حسین جان بدن تو قرق, قرق میکنن میگفت و دلداری میداد آروم میکرد اینها زیر بغل امیر المومنین رو گرفتن بیارن خانه همه شنیدین وقتی رسید نزدیک خانه گفت پاپا خودم میارم گفت دخترام طاقت نمیارن منو تو این وضعیت برید اما یه جمله بخوام بگم تو مقتل دیدم دلم سو. همین وقتی امیر آوردن داخل خانه همین زینب چشمش افتاد به سر خونین پدر زد زیر گریه که عجیب آیون دختر یه چیز دیگه است دا. امام حسن گریه کرد دلداریش داد امام حسین گریه کرد اما تا زینب گریه کرد علی نتونست خودشون های های علی هم شروع کرد با دختراش گریه کرد گریه دختر رو طاقت نیا بلند بلند علی گریه میخوام بگم علی جان یه فرق شکافته دید زینب اینقدر بیتابی کرد اما جاد خالی بود تو خرابه شام وقتی سر بحیفه عبا عبدالله آقل و سه همین روغیه رو در زر کنار چشمش افتاد به سر بریده بابا ای hey, صدا میزد بابا کی رگای گردن تو بریده من لذی قطع وریدک من لذی بکب یه وقتی در این دختر خم شد لبه رو گذاشت رو لبه بابا یه بوسه زد سر از یه طرف افتاد دختر از یه طرف و الله علیکم یا اهل بیت النبی